سخنی با رامینوری. نوری اجازه بده دیسکورس امشب را آغاز کنیم غافلگیر نشو چون یکی از دوستان قدیم ما اینجاست که در جهان شما شهرت به سزایی دارد رامینوری، استاد حق معظمی که در مبد حکمت زرین شهر رتس واقع در سیاره زخه خدمت میکند در مقابل هم چهره شکوهمند و خندان مردی را دیدم که به نظرم آشنا می آمد. دهان گشود و سخن آغاز کرد سوگماد خدای باری تعالی است اک متعال جوهره غیر مشروطی است که عرصه کل واقعیت است و تمامی حیات از آن سرچشمه میگیرد. مقام متعال در جایگاه قدرت اک قدرت نیست بلکه جوهره ای از هوشیاری است که کل حیات را در پهنه کائنات برپا پا نگاه می‌دارد. این قدرت به همان تعبیری که یوحنا در سفر مکاشفات میگوید از خدا می‌آید. من لوت زندگی را دیدم که از سری خدا جاری بود. او قدم به بهشت جهان درون خیش نهاد و شکوه خدایی را نظاره کرد. آری استادان اک می‌آموزند که اقلیم بهشت درون آدمی نهفته است و یوحنا یکی از کسانی بود که قادر به درک این حقیقت بود آری می بگویم که هر استاد حقی نور عالم است یا اونسا در قالب نور پیش آمد هر استادی با خود نور آن یگانه جاویدان را به ارمغان می آورد چنانچه کسی توجه خیش را بر استاد متمرکز کند و در نور حضور او قدم بردارد دیگر برایش تاریکی وجود نخواهد داشت. رودخانه این که از سرید خدا فرو می ریزد قدرت عظضیم است که عشق یا دایال نام دارد. اسامی دیگری هم دارد مانند پریت، خدا یا ساتپروشا قدرت مثبت، دایال یا بخشنده زیرا که متعالیترین درجه فیض و رحمت است. با ذرات درخشنده اش حیات را در سراتل کیخوانهای بی پایان دوام میبخشد. از میان نواحی بینام به زیر جاری است و در نخستین هیئت منفردش در طبقه پنجم از عوالم هستی صورتی بر خود میپذیرد که تو به نام می شناسی این وجود شاهانه بر تمامی آفرینش و از قطب مثبت کل عوالم فرمان می‌راند با وجود اینکه او متعالی ترین تجلی مقام متعال نیست، همه ی قدیسین او را پدر و خالق متعال ما می‌دانند. این گونه است که ما قدرت را به مثابه واقعیت می‌شناسیم. قدرت متعال مراتب نیروی عالم است که خود را نخست در صورتی به تجلی می‌رساند که آدمی آن را وجود خونسارم مینامد. علت آن این است که این قدرت عظیم نیرویی است که در خود تمامی آنچه که خیشه حقیقی را میسازد حامل همین می, همی می کند این همان است که تو قدرت اک خطاب می کنی قدرت آنچه خدا و گاهی عشق می نامیم اما این نام درست آن نیست در واقع این سوگماد است که آفرینندی ما به شما میرود. یک واقعیت چشمگیر در عالم نهفته است که پایینتر از طبقه روح. هیچ یک از اعضای سلسله مراتب خداوندی قدرت آفریدن روحها را ندارد. فرمانروایان طبقات پایینتر از پنجم اختیار اعمال قدرت خلاقه بر کل اشیاء را دارا هستند، اما نه قادرند روح بیافرینند و نه آن را نابود سازند. در هیئت سطح نام، فرمانروای طبقه روح انرژی متعالی آفرینش برای نخستین بار در جهانهای بالا به تجلی در میآید در طبقات ششم و هفتم قدرت تا به حدی به خدا نزدیک و غیر قابل تفکیک است که ستنام به منزله نخستین هیئت کامل مقام متعال شخصیت می‌پذیرد. به این ترتیب او به قدرت اجرایی خدای تعالا در کل آفرینش بدل می‌شود. و در ناهیهای که تو به عنوان ساجخان و برخی دیگر با نام طبقه فیت و رحمت میشناسند مستقر مستقل از آن مرکز فرماندهی بر تمامی نظامهای کائنات حکم میراند. راند پروردگار متعالی است که استادان باید در تحقق رسالت بازگرداندن روح ها به خانه نهایی خود با او همکاری کنند او پدر کبیر بروی متعال و بخشنده نور است او حقیقتا پدر بهشتی ماست ما می تمامی مقامات سلسله مراتب خداوندی پایین تر از او را مورد احترام و عشق خود قرار دهیم اما وقف نهایی منحصر به ستنام است زیرا که او خداوند حقیقی و پروردگار واقعی تمامی عوالم هستی است همه یه فرمان روایان طبقات بالاتر از او من جمله یگانه بینام آنچنان درک ناپذیر غیر قابل تخمین و شخصیت ناپذیرند که حتی در اندیشه نیز نمیتوان به تصورش درآورد. اما ستنام در تیفی میان نور بیپایان و عوالم مخلوق استقرار است. هر روحی پس از اینکه از تمامی ها تسکیه شد به لُبه خود از روزنه چشم معنوی عبور کرده و او را به مصابه پدری می‌آورد که خوش آمد گرم خود را از بابت بازگشت به خانه به ابلاغ می‌کند این معنای حقیقی حدیث بازگشت فرزند ناخلف به خانه پدر می‌باشد و چار تا روزی که در زمین به سر می‌برد ملزم به اطاعت از قوانین قدرت منفی یا به عبارتی دیگر قوانین طبیعت است این قدرت به عنوان قدرت کل از قطب منفی آفرینش سرچشمه میگیرد. نقطه ای بر فراز سه جهان کیفیات هستی که دومین بخش اعظم کیهان نامیده میشود. این قدرت یکی از مشتقات قدرت عظیم خداوندی است و نامهای بسیاری دارد یکی از این اصامی کل به معنی دادگر یا عادل است کسی که بشر را به خاطر اعمالش حاداش یا کیفر می‌دهد و نظام سانوی واقعیت را می سازد که محسوس او در حیطه وهم اقفال و نسبیت محرز می شود. او را عمدتا با نام جات می رنجان سلطان واقعیت منفی میشناسند. به این ترتیب قدرت منفی در فرمانروایی به نام رنجان متجلی می شود. همان گونه که تسنام تجلی مثبت خداست، این وجود کهتر تجلی منفی قدرتی است که به منظور حفظ عوالم تحتانی و نیاز به ارتعاشات خشنی از طبیعت ماده جریان دارد. این وجود خالق و فرمانروای عوالم فیزیکی است. او تجلی خدا در انجیل و در کتب آسمانی یهود و مسیحیت الله در قرآن مسلمانان برام بدانتیستا پرابرام سیکا و عملا تجلی مقام متعال در تمامی ادیان است به غیر از استادان اک هیچ کت خدایی به جز تجلی پروردگار عوالم تحتانی را شناسایی نمی کند ازالک تمام عالمیان در سراسر گیتی این وجود را به مسابه پروردگار متعال نیایش و ستایش می کنند. در حالی که او تنها یکی از زیردستان سلسله مراتب عظیم کیهانی است. او از ناکاملی ها مبران نیست و هرچند سرشار از نور، حکمت و قدرت است، در مقام مقایسه با ستنام جایگاه حقیری دارد. قدرت ملفی پس از عبور از این تجلی به سه جریان فرعی تر تقسیم می شود که هندوها آنان را به نام های براما، ویشنو و شیوا می شناسند می گویند این سه جریان پسران برام سرمنشه قدرت منتی می باشند مقارن مهندنس برام شاکتی نام دارد که خود یک جریان فرعیتر نیروی آفرینش است. گاهی لقب مادر مقدس را که به شاکتی تعلق دارد به نشان افتخار به برام منصوب می کنند. از اتحاد برام و شاکتی سه جریان فرعی به سوی اوالم تهدانی اشتقاق می آهند. که آفرینش طبقات پایین به آنها نسبت داده شده است این سه جریان آفرینندگی رو بوبیت و حکمرانی جهانهای زیرین را تحت نظارت جویبار والتوار خود برام و شاکتی به عهده دارند ولیکن بیشتر تحت سرپرستی مقام مادری عمل می کنند هر یک از این جریان ها عملکرد خاصی در امر تولید و نگهداری از کالبت های انسانی می باشند اینان خدایانی شایسته نیایش نیستند بلکه صرفا خدمتکارانی در دربار ستنام متعال به شمار می روند در تیفی حتی, حتی پایین تر از این سه جریان جریان دیگری به نام گانش یا گنش وجود دارد که در نقطه سفلای سلسله مراتب قرار دارد و وظیفهش خدمت به نوع بشر در انجام کارهای دنیاست. زیر این جریانات سپاه عظیمی از وجودهایی خدمت می که عموما فرشتگان نامیده می شوند و ما انواع آنان را با اسامی دواها، دلاها، بودها، پرتها و غیره می شناسیم. اینها وجودهایی در میان آدمیانند که در خدمات گوناگونی وی یاری می دهند بشریت در انتهای این سلسله مراتب استقراری یافته است جریان عظیم صوتی این طبقات آم یا ام یا آنچه شما امکار می نامید می باشد ای نور چشم ما گفتن حقیقت بیش از آن است که روحتو بتواند به عبارت کههنی هست که میگوید نابینای واقعی کسی است که دیدن امتنا میبرد و این آارزی است که برشر با آن دست به گریبان است به رحمت استادان اک به من اجازه دادند به فراسو سفر کنم و به چشم خود ببینم اما بسیار هنوز نه دارن دارن باور دارند و نه مینگ دارند باور کنند. هر یک میپندارد که جهانش برترین جهان هاست. و همین امر باعث توقف وی در آن جهان می شود همه پیشگویان یوگی سوارها یوگیها ریشیها خردمندان تناسخات ناجیان و بسیاری از پیشوایان از ناحیه براه گسیل شدند و با قدرت منفی کار میکنند. کنند مقصود آنان پیش برده وضعیت امور جهان کالا یا کارماست نه بیرون بردن روح ها از عوالمه تبوهم عارفان برترین نظام ها از طبقه رحمت که بالاترین طبقه خداوندی است آیند اما در اینجا درنگ می‌کنم تا بگویم که بسیاری از قدیسین مسیحی و عرفایی که بسیار مورد تجلیل و ستایش قرار گرفتند به سختی توانستند خود را بالاتر از طبقه اسیدی به نوحسین از عوالم درونیست برسانند اورافای که از طبقات بالا میآیند مثل قدیسین جهان منفی مبادرت به اصلاحگری دنیا نمی کنند آرزوی آنان رها کردن بشر از این قیده توهم و هدایت او به سوی خانه حقیقیش ندامان فیض و رحمت جاودانه حکمت مطلق و عشق خداوندی است اطمینان عالم کارما را که در زیر دومین بخش ازم هستی قرار دارد این سا جهان زندان عظیمی می سازند که حجره ها و سلول بی‌شماری بیشماری دارد براه زندانبان و بشر زندانی است خانه حقیقی او در ناهیه بینام در فراسو قرار دارد اما برام آن را نمی‌پسندند. نمی پسندن. هر چند است، هم هموار شرایط زندان خود را در حال بهبود ببینند بنابراین قدیسین پیامبران و اصلاحگران اخلاقی اجتماعی و سیاسی خود را به این آلم گسیل می دارد تا جهانش را از نواقص پاک کنند لکن آنان نمایندگان وی می باشند و بر مبنای قدرت او عمل می کنند. یعنی اصلاحات مورد نظر او را درونه دیوارهای زندان به اجرا در می‌آورند. آنان حتی به بشر نمی‌گویند که مقصد نهاییش در قلب مقام متعال است شاید خود نیز آن را ندارند به هر حال خدا مردان از بیرون زندان میآیند و کسانی را که مایلند از بند قدرت براه آزاد می کنند تا به برکت فیض و رحمت به خانه حقیقی خود برسند درون عوالم براه یوگاه ها یا اعثار همچون چرخی در گردشند سپس همه کائنات برچیده می شود و دوباره آغاز می گردد که که صلح حقیقی در آن استقرار یابد همچنان که در وداها و دیگر کتب آسمانی آمده است آدمی حتی پس از رستگاری دوباره باز میگردد و جایگاهش میتواند حفره حقیقی حقیر یا کاخی با باشد توهماتی که نمایندگان قدرت منفی با آدمی عرضه میکنند خیالی است به هر حال اعمال آنان موجب اطلاف انرژی است آنان آدمی را با این قول فریب میدهند که آمده تا او را به خانه پدر حقیقی در بالاترین مقلیم بهشتی شوند. در حالی که به جای آن زنجیرهای محکمتری بر جانبه آنان به منظور ترویج نیکی و انهدام اهریمن می آیند عمل آنان در محدوده علت و معلول یا نسبیت و پندار ترخمی است حتی خداوندگار کرشنا به جهانیان گفت که نماینده قدرت منفی است. او میگوید؟ آنگاه که پرهیز که پرهیزگاری به کساد کشیده شود اوه به و بدکاری تجلیل گردد همانا من خودشها به ظهورها هم لسانید او همچنین میگوید برای حفاظت از نیکی برای انهدام بدکاران به خاطر برقراری تقوا در خانواده من از عصر به عصر تولد می این اینچنین تناسخ ناجیان هر از گاهی به منظور برقراری تقوا حفاظت از نیکی و نابود کردن اهریمن به این جهان وارد می شود اصلاحات آنان مانند بودا، گریشنا و سطح ناجی دیگر در حیطه اخلاقیات است. آنان ما را به مطلق نمی رسانند. جایی که نه پاداشی هست و نه کیفری آنکه نه نیکوی می بینند و نه اهریمنی چون نیکوزش نسبی و به خودی خود وجود ندارند حقیقت مطلق فراسوی نسبیت و پندار نهفته است کرشنا تناسخی از قدرت کل بود چون خود این چنین میگوید خدای مطلق مقامی که در فرزمین بینام جایی دارد هرگز خود را به منظور نابود کردن یا اثیر کردن آدم در این جهان متجلی نمی کند. او نسبت به همه روح‌ها بخشنده و رحمان است او مقیانوسی ازش و رحمت است فقط از کسانی که از اقلیم وی به این جهان آمده باشند قادرند روح هر بشری را به آن اقلیم بازگردانند همان گونه که تجلیات تناسخ یافته نمایندگان قدرت منفی‌اند نوشتجات مقدس آنان نیز قوانین زندان این جهانی را افشا کند بشر آزاد فراسوی قوانین این چه جهان است مکاشفات کتب مقدس از بشر می‌خواهد اعمال زشت را ترک و کردار نیکو در پیش گیرد اما معدودی از آنها به این میآموزند چگونه فراسوی نیکو باد اوج بگیرد و از سلسله مرگ و فنا و قانون کارما نجات یابد پس می توان گفت اگر اعمال بد پابندی فولادین است اعمال نیک نیز زنجیری زغبین است که هنوز اصارت چشم داشت از این زندان است هر دو قل و زنجیرهایی هستند که آدمی را به این زندان بستند. خارج شدن از چنگال مایا و کارما کار دشواری است اما ما با پناه گرفتن در سایه استاد حق در قید حیات می توان هنوز امیدوار بود. آنگاه فرما با تو خصومتی ندارد و مایا قادر به فریب تو نیست. باز هم به مغوله می رسیم که در آن رفتار نیکو مورد سوال است. کردار نیکو چیست؟ چه عاملی کردار زشت می سازد؟ من فقط می توانم بگویم هرچه باعث تأخیر در پیشرفت روح در راه اکتساب آزادی معنوی می شود خطاست و به دکس به بشر گفتند به اراده خدا عمل کند از کجا می توان اراده خدا را تشخیص داد؟ آیا تو میدانی؟ فکر چون دانش تو محدود به گفته است که کشیش مقامات روحانی و معلمی از های مقدس نقل قول كردهاند. شاید به ندای درون گوش می‌فپاری که آن هم میتواند توهم قدرت منفی باشد که با تو سخن میگوید پس بگذار بگویم که فقط به آنچه خدا مرد می گوید گوش فراده او می‌داند اراده پروازگار چیست خدا واقعیت است باقی همه توهمی بیش نیست چون بدون خدا بدون نور و سوس همه چیز باقده اللفت می باشد. شما شما عزیزان را با این اندیشه ترک می کنم. من همواره به رحمت خدا تکیه دارم پروردگارا من شایسته تو نیستم اما ازان تو هم پال میخواهم از شما سوالی بپرسم ای سربرم رامینوری، من سرور تو نیستم اما بپرس پال آیا وجودی مثل مهانتا حقیقت دارد فقط به منزله قدرت متجلی شده مثل ربازارتاس و من قدرت خدا میتواند هر شکلی را که میل داشته باشد برگزیند معمولا خدا مرد به قصد عرضه نور حقیقت به برخی از معلمی و مریدان در صورت دیگران ظاهر می شود پال اگر در شکل اصلی خودش ظاهر می شود، آنها یا او را می شناختند یا شاید باورش نمی کردند. رامی نوری برچلاهای اک او در قالب ماهانتا استاد حق در غیر حیات و استاد ویرونی هر یک از پیروان خودش ظاهر می شود او در هر تعدادی از صورتها که میل داشته باشد ظاهر می شود او می تواند در مراقبه یک فرد یا بر افراد بیشماری حضور پیدا کند. او میتواند همزمان بر میلیون ها مردمی که در مراقبه اند در میلیون ها شکل مختلف ظاهر شود او خدا است و برایش غیر ممکن وجود ندارد این را هم بگویم که کسانی که قادر نیستند او را در صورت واقعی خدا ببینند و را در قالب معلم یا گروه خود میبینند که در عالم در آن آموزش هایی را به آنان میدهد که قادر به دریافت آن باشند پاد. به عبارت دیگر آنان قادر نیستند بالاترین های استاد حقه در غید حیات را بپذیرند بنابراین او ترتیب میدهد که آنان آنچه را که قادرند درک کنند دریافت دارند رامینوری نه اینگونه نیست اینها صرفا مراحل آمادگی آنان برای دریافت بالاترین تعالیم به شما میروند تا هم مجبور بودیم مراحل را پشت سر بگذاری تا به ترین تعالیم دست یابی چنانچه چشمانت زود تر باز شده بودند نیازی به طی این مراحل نمی داشتی پا. من بسیاری را دیدم که آموزش ها را پذیرفتند اما فقط ارزیابی ناچیز و مبهمی در رابطه با اقتصابات معنوی خود دارند رامینوری هرچه بالاتر روید چنانچه پایه به لغت سقوط عظیم تری خواهی کرد حتی خدا هم چنانچه به خود اجازه دهد ممکن است سقوط کنند، اما به ندرت پیش می آید استاد سقوط کردگان را معمولا به دنیا یا هایی که برایشان مناسب ترین باشد می تا روزی که دوباره آمادگی سفر بازگشت به خانه را به دست آورند پال تکریب تعالیم خالص اکنکار چه می شود؟ رامینوری جوهره حقیقی اک خالص است بیشتر معلمین حد کوشش می کنند جویندگانی را راضی نگه دارند که خواسته هایشان موجب می شود انرژی آموزگار به خاطر سازمان و بیرونی سرف شود و شخصیت شخصیتگرایی آید. به خاطر داشته باش که کسانی که اشق و احترام دیگران را برای خود طلب می کنند تنها با قدرت منفی سر و کار دارند و یا به دنبال قدرت هند آموزش های حقیقی به هیچ وجه کسی را انضباط نمی دهد برای کسی وظیفه ای تعیین نمی کند و هیچ دشواری و مشقتی را به خاطر درش دادن به مرید یا پرورش خصائص و شخصیت نیکو در وی نمی داند تعالیم حقیقی نگران نیکوزشت نیست، عشق و وفاداری مریدان هم تفاوت چندانی نمی کند آموزگاران حقیقی فقط انتظار دارند سخنی را که میشنوی به کار گیری. معموریت آنان فراهم آوردن روح است که آزم بازگشت به خانه هم. این را هم این نور چشم ما به خاطر تایید کلام استاد می گویم که تو رسالت بزرگی در زمین داری همکنون در بخبهه آزمون های آن قرار داری به پیشرفت ادامه بده و به زودی نتیجه خواهی گرفت روزی در پیش است که تو ماهانتا شدید دنیا راهش را تا پشت در خانهت خواهد یافت. ما که تو را تحت نظر داریم اطمینان حاصل خواهیم کرد که آنچه اراده خداست در همین عمر بر تو محقق شود پس تردید نورد شهامت داشته باش این بود همه آنچه برای گفتن داشتم شاید باز هم روزی نزد تو بیایم بدرود بدنش مثل مه صوبگاهی محف شد و من به استاد را تنها گذاشت بعد از مدتی استاد با صدایی بسیار ملایم گفت حکمت خدا چه راه های حیرت انگیزی می بزیند. خدا به کسانی کمک می کند که آرزومند کمک به خیشتنند حقیقتا که تو فرد سعادتمندی هستی پاس حالی سپاسگزارم.